حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم که دلم سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجباک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. سلام به همگی اینجا رادیو پس فردای شماره 980 امروز دوشنبه 19 بحمنه 94 موسیقی خوبی این خوشی این سلامتی این چه خبرها چی کارا میکنی؟ آقا 19 تا که نه 20 تا دیگه 19 تا 20 تا 19 تا برنامه دیگه تقرم. 19 تا برنامه بیشتر نمونده و دیگه چی بگیم دیگه عمر اینجوری میگذره ها بله سامی هم که مون رو دستمون ما اول این سیزن قرار بود که سامی رو زنش بدیم دیگه همین مون دیگه هیچ هم شده حالا بگذریم اه... بریم سر برنامه خودمون امروز می‌خوایم در مورد شعارهای ورزشی و البته فرهنگی با هم صحبت کنیم ببینیم این شعار که میگن باد هوا چجوری میتونه بر مسابقات و البته باورها و اعتقادات آدم‌ها تاثیر بذاره پس الان جاوازه سلام مخصوصی عرض بکنیم در همین ابتدای کار خدمت همه بخچی ها و لیدرهای ورزشی که الحق یک تنه میتونن شعار دادن شعار بدن و یک استادیوم رو کنترل کنن با شعار دادنشون و خسته نباشی هم بگیم به کلیه دستن در کاران اوذای فرهنگی و تبلیغاتی شهرداری ها و سازمان ها و ادارات بابت خلاقیت هایی که گاهی برای تزریق معنویت و اخلاق به جامعه و محیط کار البته طبق استانداردای خودشون به خرج میدن دیگه واقعا هلاک کردن خودشون رو با شعار سازی های خلاقانه و فرهنگ سازشون برو بریم آقا برو داخلیا توی یادتون باشه اون دستوروشی رو که چند وقت پیش جلوی چشمای پسرش توسط مامورین شهرداری با پنجه بکس مزروع شد و بعدم متاسفانه جونش رو از دست داد. اما شهرداری ظاهرا از اون ماجرا درس عبرت که نگرفته، هیچ کلاً عملیات های خودش خودشو وارد فاز جدیدی از ارعاب و خشونت کرده. چه جوری؟ الان عرض میکنم داستان اینه که دو شب پیش توی سعادت‌آباد تهران ساعت دو بعد از نصف شب یک اکیپ شهرداری برای پلم کردن یه کارواش به محل مراجعه میکنن چه جوری اینجوری ساعت یه کنیم بود نگه احبان اعلام کرد که شهرداری اومده میخواب پرلم کنه. ما اومدیم که با شهرداری توافق کنیم که حک بدیم ما در خدمتون هستیم اگه حکم داشته باشه ما در خدمتون بعد یه دفعه اولش 8 نفر بودن یه دفعه شدن نمی بینیم نفر 300 نفر شاید بگم 500 نفر یه دفعه شروع کردم به حمله با سنگ و و لودر آوردن جرا شروع کردن کندن بعد کارگران مزبور شدن از زونشون ترسیدن شروع کردم فرار کردن بازم که پلاتینی بود کلا داغون شده نوشتم به بیمارستان ارتوبیت حالا یکی از زنده هم شسته سرم که با غمه زدن داغونش شد. آخه چرا واقعا شهرداری با غمه و چوب و چماق باید 300 نفر آدم بسیج کنه برای پلون به یک کارواش؟ حالا البته با تصاویرش میدیدین تمام تأسیسات و خدرهایی که اونجا بود داغون کرده بودن کار کارباش همه هم یا غمه خورده بودن یا سرشون و دستباشون شکسته بود و جالبتر از همه این همه این اتفاقات در حضور نیروی انتظامی افتاده بوده به خدا والا به خدا گفتم که یک اده متاسفانه قمه به دست و گرز به دست رفتم خودم به عنوان مسئول مسجد و کارواش معرفی کردم و اینها خلاصه نزدیک بود به خود بندم حمله کنن که پلیسا منو خلاصه یه جوری به زور از معرکه بردن اون طرف حالا دیگه ما نمیدونیم حمله شهرداری با قمه و چماق و البته با حمایت نیرو انتظامی به یک کارواش اونم توی منطقه سعادت‌آباد تهران اونم از اثرات پسا برجامه یا نه کلا شهرداری تهران هم از کره شمالی که هر از گایی سلای جدیدی رو مثلا ورمدار آزمایش میکنه داره روش های جدید پلم کردن اماکن و ضرب شست نشون دادن به خلقولا رو تس میکنه هرچی که هست خدا آخر آقابت همه ما رو ختم به خیر کنه دیگه چی باید بگیم والله هیچ می قلب من امشب بی قراره تا دوباره صدام و دراره دیری فرشید جون گفتم برف میام حامد هیچ وقت اشتوانه میکنه چه صدایی ایفی تو توی استیک شرکت میکردی خب حالا شما بیا توی برنامه استیک ما شرکت کن فعلا؟ حالا صدات خوبه ببینیم غذا مزام چی بلدی غذا بلدیز لحجه محلی چیزی ولی عجب برفی اومده ها تهران که کلن سفید پوش شده این بارش ها تا فردا هم تو خیلی از موقات ایران میگن که ادامه پیدا میکنه و به خصوص سمت گرگان و خراسان شمالی و مشهد و سمت مازندران حسابی قراره برف بباره کنار این مسئله از فردا سواهل خزر هم دوچار کاهش 10 تا 15 درجه دما میشن و شما فردا تازه به حرف من میرسین یادتونو گفته بودم؟ من که میدونم میدون به توصیه های من که شنبه بهتون گفتم لباس گرمان نذارین تو صندوق خونه گوش ندادین دیگه این روز من برام روشنه گوش ندادین حالا فردا نتیجه شو میبینین ببینین چه سرد میشه <تصفيق> جان. الله اکبر بر جهبر منافی بر منافی امریکا منافی اسراهی منافی منافقین و کفار oh, yes. <تصفيق> وای اگر منافی حکم جهادم دهد وای اگر منافی حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد منافی لدی وام خیلی متشکرم لطف کردین به هر حال آورین آورین اینا همه نشونهای های چیزا بصیرت بالای شنونده های ماست انقد یعنی آورین به هر حال... دیگه چی چی نمیتونم بگم دیگه اینا هم از بر های شنونده خود جوش بودن ما گفتیم اینجا بر ها به صورت خود جوش دیروز شوهر دادن اینا هم از شنوندهگان به بر... ملت خود جوش شنونده... شنونده بودن دمتون گرم اه... اما بریم سراغ یک مطلبی که شاید خیلی از شما تو این چند روزه باش برخورد کرده باشین شاید شنیده باشینش اه... خانم شینا شیرانی مجری سابق تی تیوی یعنی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تازگی ایشون از کشور خارج شده یه سری افشاگری کرده توی چند روز گذشته از مشکلاتی که با یکی از مدیران این شبکه داشته که ظاهران مدیر ایشون بودن جوری که این افشاگری ها میتونن منجر به در اومدن شاخ رو کله آدم بشن خیلی اصلا یه وضع عجی ماجرای اینه که این خانم یه فایلی رو در اختیار سایت روز آنلاین میاد قرار میده که ظاهرا مربوط بوده به تماس تلفنی که مدیر ایشون با ایشون داشته. مسئله اینه که بر اساس این فایل حال آقای مدیر در لحظه تماس ظاهرا خیلی بد بوده. خیلی حالشون بد بود. من شب کار میکنم که با این چیزا رو بیرون تو زندگی. من تو میتونی خیلی خیلی برو زنی کن. برو برن خب من بله. بله حالشون گفتم خیلی بد بود. البته خب خانم شیرانی توی یه مصاحبه همین ها رو به تفصیل اومدن توضیح دادن یک بخشی از اون هم گوش کنیم ببینیم ماجره دقیقا چی بوده عملا این شده بود که من میرفتم تو اتاق آقای حمادی ایشون دستور کرد تو دفترش که من میرفتم تو دفتر ایشون و من باید همهش همیشه تنم می‌لرزید که الان نمیری این سمت من الان از صندلیش فقط بلند من دم در وای نیستم دورترین نقطه ای اتاق ایشون من میشستم سری که الان بلند یا اگه بلند شوم من سریع میتونم بله، در این بار حافظ یه داره که خب خیلی هم تکراری شده از بس که این دوستان وایز و مدعی اخلاق و تقوی و اینا دیگه هی اثباتش کردن، همش حی اثبات میکنن اینو، همونجا که میگه این دوستان چون به خلوت میروندان کابر دیگر میکنند، الان این صداهایی که شنیدید مربوط به خلوت یکی از همین دوستان بود. اصولا دیگه بعد نیست دیگه. شما هم از آخر بخوری هم از توبره هم تو صدا و سیما مدیر باشی پولای توپلم توپلمو پلم مقامای کوپلمپلو وامای خفن و رانتای تمام نشدنی و بگیری هم اگه دیدی مثلا بین خانمای همکار تو کسی بود که میتونست وقتی مثلا حالت بد شد بیاد به کمکت خب درخواست کمک کنی ازش. اصلاً اینجور جور که این تازه میفهمن بنی آدم اعضای یکدیگرند. اینه که زود درخواست کمک میکنن آخه یه جوری که آدم دلش کباب میشه دیدید که خیلی حالش بد بود درخواست کمک میکرد مونده کم دو بود دوستمون بگی کمکم کن کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم کن kum, kum. اینجا بمونم تا بپوسم کمکم کن کو مچیم کن نظری چه لب مار گپ بوسام کو کن کمکم کن اشک نفرو نیب پاروای میخو ماهیچه آبای تازه داری ایها، دلمان داریه دل چشم بر چکه, چکه به جای خود شعر سرخ رفتن تن به منجا ندیدا و ما بریم سراغ موضوع امروز شعارهای فرهنگی ورزشی از شیر سماور تا توصیه به زنان برای رفتن به داخل صدف بیانیگه شماره 980 بدانید و آگاه باشید حواله دادن شیر سماور اگزوز خاور و چیزهای دیگری از این دست در ورزشگاه ها هیچگاه باعث نشده داور تصمیم خود را تغییر داده و نتیجه بازی عوض شود و چه بسا محرومیت هایی هم برای تیم خودی در پیداشته است پس چنانچه با دانستن این مسئله همچنان به جای تشویق در استادیوم ها ترجیح میدهید فحاشی نمایید همانا از نظر روحی و روانی از مشکلات جدی رنج برندگان نید امزال جمعی از شنیدن شعارهای توی آمیز توی ورزشگاه ها خسته شده ها و عطای استادیوم رو به لقای و تماشاگرنماهای تماشاگر نماهای بددهن بخشیده های رادیو پس بعد. دا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ازتون سوال کردیم، بهمون از تجربیات و خاطرات خودتون از شعار دادن بگین و بگین خودتون چقدر احل شعار دادن هستین یا چقدر شعارها روی زندگیتون گیتون تأثیر گذاشتن و گفتیم که این شعارها میخواد و میتونه شعارهای سیاسی انتخاباتی باشه یا شعارهای فرهنگی مثل همین موضوع امروزمون که تریج و تبلیغ حجابه یا حتی شعارهای ورزشی که بازم موضوع امروزمونه برای تشجیع تیمتون یا از بین بردن تیم هریف. و کلا گفتیم خاطرات و تجربیات شعاری خودتون این هفته به ما در میون بذارین بگین آیا به نظرتون این شعارها تحصیلی هم تو زندگی واقعی داره یا نداره آخه خشید از شعار گفتی من بیست چند سال پیش دوران را نبتاده تو این پنج سال که اول ما همیشه باید کچل میدیم مود تو سرم نهیدیم صحبای زودم برمیستیدیم سر صف یخ میزدیم یه مشتوها می‌کردیم برای طول عمر رهبر و شادی و این چیزا و هم یه مشتوها رای تمام کشورهای دنیا غیر از خودمون ولی من اینجا میخوام بگم که مرگ بر اون نازم و مدیری که ما رو مجبور میگه داد بزنیم و فریاد بزنیم و گلو خودمون رو پاره کنیم که هر کی بلندتر بگه صداش تا آمریکا میره خیلی ممنونم از تماستون ولی حالا مرگ بر گفتن که کلا خوب نیست حالا چه بخوایم بگیم مرگ بر یه کشوری یا مرگ بر یه نازمی یا حالا هر کی یا هر چی نگیم حالا از میتونیم بگیم ننگ بر یا شرم بر یا حناق بر یا چه میدونم هر چی بر غیر از مرگ بر از حضورتون که میدونم شما چی میگی دیگه سر هممون اومده الان نازنینم توی فیسبوک کامنت گذاشته گفته بچه که بودیم سر صف مجبور میکردیم شوهر بدیم نازم میگه یه جور بگید مگی ورام آمریکا صداتون تو آمریکا بره ما هم جگر خودمون رو پاره میکردیم انگار که آمریکا پشت دیوار مدرسه است که شنبه راجبش مفصل حرف زدیم صفترم گفته شوهر همیشگی رادیو پاسوردم آهنگ روبابه بود که دیگه ازش خبری نیست اونم الله به زودی میریم سراغش دیگه ببینیم چه خبر بوده بر بچه ها کامنتی ها احسان قهری گفته شعار ما اوه یس یه سری دیگه هم خب شعار تلفنی هم داده بودن که پخش کردیم مم مم مارزاده، عباس منافی منافی حمایاتت میکنیم فرشید فرشید شعار ماست پسفردا افتخار ما، منافی رونالدو فرشید سرتلایی امید پسفردایی فرشید بیا اینجا فرشید بیا اینجا خیلی متشکرم دیگه خجالت هم دادین دیگه برحال من ندام کجا باید بیام ولی ممنونم از شعارهاتون اه دیگه اه دوباره همون آقا سفتره بود گفته که قسمت استیک خیلی طولانیه کلی وقت برنامه رو گرفت کمش کنید نظرتون رو گفتین دیگه حالا یه ساعت میشین استیج نگاه میکنین طولانی نیست حالا مثلا ما 10 دقیقه برای معرفی بوده دیگه در دقیقه استیک رفتیم تا نوبت استهی که ما رسید طولانی شد بعد دیگه عرض بحضورتون که دیگه همین دیگه بریم سراغ راه های ارتباطی رادیو فردا.com ایمیل ماست در فیسبو گوگل پلاس کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید اپلیکیشن رادیو پاسفاردار آی و ایو هاش میتونن دانلود بکنن و از اون طریق صداشون رو به ما برسونن و همچنین برنامه رادیو رو دانلود کنن و رادیو را به صورت زنده بشنون تلفن های ما دو صفر چهارصد بیست، و دو یازده، بیست و و سی و سه، اونایی که از داخل ایران تماس میگیرند 21 79, از طریق شماره تلگرام ما. میتونید برای ما از طریق تلگرام هم پیام بفرستید هم صداتون رو بفرستید هم عکس از غذاهاتون بفرستید که برای بخش استیک قراره تهیه بکنید شماره تلگرام ما دو سفت چار بیست و دو سی و سه هشتاد و سه هفت stay بله تشکر می کنم سلام و دوباره خدمت همه های عزیز این افتخار رو دارم اعلام کنم که از دیشب خطوط ارتباطی استیک که همون خطوط ارتباطی رادیو پاس‌فرضا باشن به شدت توسط شما اشغال شدن اه... یعنی جوری که همکاران من برای جمع آوری و تنظیم این تلفن‌ها واقعا به مشکل برخوردن امروز با تشکر از این همه لطف و استقبال شما با هم به قسمت‌های کوتاهی از استیک دیشب گوش میدیدید روزوی معبوب و لذیز گوشت قلیه مویه. حتما اگه دقت کنی اون ماهی که تو قریه ماهی شما بود و اولین بار جد پدری من پخته بود. به افتخار جد پدری شف یا همون پرودیوسر برنامه. باشه جان یک دیزی درم آب دیزی گوشت در توی گاراژ داره اسمش محلش گارج داره دیزیاش خوشمزه ای که خدا میدونه. کلاً تو شکمو خوبی هستی و دوست دارم این با دامت گرم خوشم معقظا. خب قضیه من اسمش کباب با ای با پلوه مریم جون معلومه که شما یه شکموی تحصیل کرده هستید من حتما دلم میخواد که کباب تابه تو رو بخورم یه غذای هستش برای خط اسمش جوشواره هست. سعید دوست عزیز منو یه کار خیلی مهمه توی کار ما از منو غافل نشید لطفاً ولی نظر سعید رو هم جدی نکردید در شب دوم استیک هم شرکت کننده ها با لحجه ها، غذا ها و مزده مختلف گاز استیک رو خالی نذاشتن پس با هم میریم به سراغ شرکت کننده اول استیک امشم و داورا کوکا خودم دمتون گرم آقا ما نمیخواستم از ماهی سبور و قیلیه و آش آبودان براتون بگم ما میخواستم از یه غذای بال براتون بگم که روزای تعطیل. بیشتر به عنوان سبونه می‌زنیمش اونم باقاله است که اگه خوشپاشی کوکا ایره روز قبل بذاریش تو آب خیس بخوره بعد شبم تاسوبی خدا رو کولو بعد بذاریش چی بپزه کوکا شبم تاسوب اگه دو سه بار بهش پاتک نزنی باقاله خوب در نمیآیه رازشه متوجه بعدم صبحم یه آب لیمو و روغن زیتون و پونه ر می‌زنی بهش تلیت میکنی تیش میزنی تو رگ این خدا کولو کو گادمرد گه کولو بله خیلی ممنونم از شرکت کننده اول بریم سراغ شف های پروژیوسر های برنامه استیک ببینیم که نظرشون را دارده اجاب شرکت کننده اول چی بوده؟ مرسا؟ قولو خیلی منو تحت تأثیر قرار دادی فقط یه نکته ای هست اینه که باقالی خیلی غذای اجتماعی نیست یعنی بعدش اگه تو جمع باشی باید صدای موزیک خیلی بالا باشه بله نظرش احرام چیه؟ قلو که کم کله که علب بیاد بره ما خدا با این لحجه بینمیلیه که تو داری ما مایلان با شما کار کنم خب پروڈیوسر ما مایلی که با شما کار کنه سعید دوست من توضیحاتتون خیلی کامل و خوب بود به خصوص اون پاتک های شبانه به کار تو خیلی جذاب تر کرده بود دوست داشتم بسیار خب ممنونم از پروڈیوسر های برنامه بریم سراغ شرکت کننده بعدی استیک امشم سلام فرشید جو خوبی ما تو کاشو قیزه داریم اسمش گوشت با. شما لوبیابه دوسته صدخیص میکنی بعدش با گوشت دونبه و نمک و زرجوبه و چار تا پیاز میریزید توی قابلمه دیگه چار پشت صد میذاره خودش زلز میاد بعدش هم میری پیش آساسه میگی از گاب سفیدش بشه دو محلی بدن میخوری و دیگه تا پراگ میدوی یقید خوشمزه حامد از تم قربونت از قمصه کارشو. ممنون از حامد از غمسر کاشان مهسا نظرش چیه راجبه این غذای این دوستمون والا من نمیدونم چه علاقی وجود داره به این همه غذای نفاخ خب معلومه این همه لوبیا با دوغ بخوری تا پراگ میتویی <تصفح> و سعید والا ایشون خیلی خوب بودن اما من متاسفانه نمیتونم رای مثبت بدم چون با تصور اون همه لوبیا و این معده دردی که من دارم واقعا میتونه منو دوچار دو شواری بکنه قضاشون <تصفح> خب ظاهرا خیلی این قضا مورد توجه پروژیسورهای ما قرار نگرفته شهرام میگم این قضا خود جنوبی نبود به درد من هم نمیخوره به دردشون هم ممنونم بریم سراغ شرکت کننده بعدی ستیج امشم سلام خدمت داور جرانی شما تو شیراز برای صبحونه میری آشی سر کوچه تون آش سبزی با پیاز داغ ول ون و نون بازاری داغ میشونی میای خونه با آبلیمون میخورری میشه صبحونن بعد میری سراغ نهار کلم پلو با سالاد شیرازی که با آب گوره درست شده باشه یعنی با آبلیمو صفا نداره تو شیراز شام من برای هیچکس خوب نیست چاق میکنه خابایی بعدم تازه می بینید. حالا عیدا برای گرامی ری بهم دادین دستون درد نکنه ایم ری بهم ندین من همه چ؟ پشت پرده رو بعداً میرم میگم. اوه اوه اوه بله. مرسا جان شما نظرت چی بود راجع به این شرکت کننده؟ آقا این حرفا به کنار من یه سوالی دارم. دوست من به من بگو این سالاد شهر شما که این همه درست کردنش کار میبره چه جوری اسمش سالاد چیرازیه؟ من واقعا برای این سواله. اما در به غذا. آش اونم صبح خب نافخ نمی کنی؟ بب به حال این پرودوسر امروز برنامه ما ظاهرا به بخش نفخیه این غذاها خیلی مشکل دارم باهاش هاش بگذاریم بیریم سراغ پروڈیوسر بعدی جلال نظرشه ببینید بخلاف همکار پروڈیوسرم من فکر میکنم قضاها به دو دسته تقسیم میشن آش شیرازی و سایر قضاها من واقعا دوست داشتم قضایشون پروڈیوس میکنین یعنی بله قضایشون. بله حتما بر مورد نظر جلال قرار گرفته ممنونم بریم سراغ شرکت کننده بعدی وقتی من بستون زندگی کودمی اویا پچباقاله گیر باوردیم انا اسم ایس رید شل بینز انا پوست گیری انا خیست دهید دوباریم پوستم گیری بعد سیر امرا روغن زیتون امرا باشیوید خشک امرا با زرچوبه فراوان و نمک انا تفت دهید بعد آب اضافه کنی وقتی که انا بغلی نرم و بوسته به اندازه کافه بپاخته مرغانا اضافه کنی به اصطلاح خارجی انا پچت کنی بعدم با برنج کته سرو کنی مریمم از پنسیلوانیا بله خیلی ممنونم از مریم نیاز به ترجمه داره دوستان بچه‌ها والا من که چیز زیادی نفهمیدم شما چیز فهمیدیم؟ نیاز به ترجمه داره جلال جان شهرام جان برجمه میخواد یا نمیخواد؟ نظر ما که تک به رو گرفتین؟ خب زهرن پروڈیوسران ما هستشون رو گرفتن لحجه شمالی صحبت آره با لحجه خارجی با لحجه پنس... پنسیلوانیایی یه مقدار فقط رشدی و گیلانی صحبت کردن ولی زارن متوجه شدن مرسا جان؟ ای بابا من نمیدونم چرا امشب شرکت کننده واقعا های باددار معرفی می‌کنه. باستو باقالی قاطوق باقالی توخو من فکر هم به عنوان پرودیوستر آخرش امشب منو باد میبره خب پس شما یعنی فکر می‌کنم شما بهتره که امروز چیزی پرودوس نکنی امشب شهرام جان شما نظرت چیه راجع به این به نظر ما کاری که توی <تص> برنامه بنو <تص> استک <تص> ارائه میشه باید بره همه قابل درک باشه. ما اگه ترجمه آبودانی حرفاش بشنباه میتونم نظر بدم اون موقع آه این پس نیاز به ترجمه داشت خیلی ممنونم ظاهرم شما هم خیلی مورد نظر دوستان پروژیوسر قرار نگرفت غزاتون بریم سراغ شرکت کننده بعدی و آخرین شرکت کننده امشب سلام سلماز هستم میخواستم طرز تنیه سوشی ماساس بیگودی رو توضیح بدم ونید از اونجایی که یه سری دستای پشت پرده توی مسابقه استیک هست یه سری جریاناتی رو پیشه برده برای یه بله خودم از این مسابقه کنر کشم میکنم به نشان اعتراضم تا یه هفته فقط سوسیس تخبه مورد میخورم بله خب به حال شنیدیم نظرشون ایشون رو من که هل شدم واقعا نمیدونم شما هم همینطوری بودید مرسا جان شما نظرتون چیه؟ به نظر من رفتار ایشون کاملا غیرهرفهی بود همون بهتری که برن سوسیز تخمه ماخ بخورن ممنونم و سعید چه صدایی داشتن سرمز جان بله دوست عزیز با این که با این سوسو بیگودی سعی کردی نوآوری کنی رو دوست داشتم ولی الان از پشت پرده یادداشت به من دادن یک لحظه <تصفح> ها بله اون. بله <تصفح> رای منفی میدم من به شما نه بله رای شما منفیه رای مرسا جانم هم منفیه کسی رای مثبت نداره که اینجا بچه ها رای همه منفیه دیگه بله. رای همه منفیه بله رای منفیه. رای منفیه. بله, بله. بله. خیلی متشکرم از پشت پرده همه چی رو برگون میکنه اتفاق نظر داریم همون ما متشکرم خب شرکت کنندگان شرکت کنندهای امشبمون تموم شدن اما کسایی هم بودن که متاسفانه قبل از اینکه به گاز استیک برسن کارشون یا تاگیرفت یا سوخت اما توجه به اینکه استیک جاییه برای ارائه استعدادهای شما بنابراین به یه گوشه هایی از کارهای این دوستان هم توجه میکنیم با این امید که کارهای بعدیشون بهتر باشه بتونن روی گاز استیک خودشون رو توی روزهای آینده مطرح کنن اینو چوسکو شما نخوردید نوشوز کن که بخوری میفهمی قضایی انشی من صحیح هستم میخواستم دستور پخت یه غذای هست به نام ترشکلو که با گوشت گوستفند درست میشه خیلی خوشمزه. است. میگم تا حالا جوم صبح توی درک املت زدی میری والا گوشنه بعد املت دو نفر سفارش میدی پیازو میاری و املت با مشت میکنی رو املت گروش هستم از کنانشاه میخواستم برای دو تا غذا معرفی بکنم اونم دنده کباب و کرماشه و این قضای و حالا استاد منافی من فاطله در این میدونم که قضاهای قیم زنده خودشی اسفان را اضافه کنی به منوی قضاهای در برنامه استیک و وادری به تارادی و پسفرده و بخورند و لذتشه ببرند در مشهد مفهر میکنم بهترین غذاهایی که میتونیم پیدا بکنیم شد در کشورم بهتر باشه شیشلیکشه شیشلیک شیشلیک بله حالشون روزگاری شیشلیک رد شده ممنونم از همگی با تشکر از شما که گاز استیک رو گاز خونه خودتون میدونین استیک امشب رو هم به پایان میبریم یادتون باشه از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است پس ناامید نباشید و غذاهاتونو با لحجه هاتون برای ما بفرستید Gerşen külek güçemem dört yanımız etir saçan yasenem onlar gönül yere ter ter dertten ne çemendik, ne çiçektir ne könüldük, ne سرشید جان ساعت 6 صبح به دلیل پاره ای از مسئله دیگه تو هیچ اتوبانی نیستم و پیاده دارم میرم به سمت مترو و خواستم اگم که شوار پدر من تو زنگیش این بود که میگفت کتک قبل از قرآن اومده پایین و آخ چقدر ما رو میزد بچه گیا یادش به خیلی سی سال گذشت بله همون چون ساعت 6 صبح تکتنا پیاده میری این خاطرات تلخ برا تدایی میشه دیگه قرون شک ولی حالا یعنی چی کتک قبل از قرآن اومده پایین؟ یعنی مثلا پیام برای قبلی با کتک مردم به را راست صدایت میکردن چی بوده جریان؟ من اون پنده اندرز مستطر درش رو نگرفتم خب ایشون یعنی میخواسته بزنه کلن شعارش بوده اعتمالا همینجوری بیخودی میخواسته بزنه یا یه کاری میکردین دیگه کتک میکردین دیگه ها؟ والا؟ اما یه سری از شاعران هست که کارکرد فرهنگی دارند. یعنی برای نهادینه شدن ارزشها و اخلاقیات و اسلامیات و اینجور چیزاست شناخته شده ترین و البته روی مخترین این شعارها مربوط به حوزه حجاب و افاف میشه کلن جمهوری اسلامی تا به حال میلیاردها دلار شاید خرچ کرده بود چطوری تون نیم متر رو روی سر خانم ما به هر شکلی که میشه نگه داره یعنی اگه این بود جایی که از اول انقلاب صرف حجاب و افاف و بستن زنان شده بود صرف فرض بفرمایید چه میدونم تحقیقات فضایی میشد باور کن تا الان ما به خدا تو کره مریخ فضا بیاده کرده بودیم. در حال حالا هر چی که هست مسئله حجاب برای نظام مقدس ما یه مسئله ناموسی محسوب میشه و برای همین کوتا بیا نیستن دیگه ظاهرن تکنیک حکومتم اینه که ضمن استفاده از اهرم زور و تهدید و گشت ارشاد و نمند این داستانا به موازاتش هم با زبون خوش و به هر حال زنان رو قانع کنن که حجاب خیلی هم خوبه و زنا به نفع خودشونه که هجاب داشته باشن و این حرفا حالا یه زمانی گوهر و صدف و این چیزا روی بورس بود ولی الان دیگه خب قدیمی شده اونا از مثالهای خلاقانه‌ای دیگه ای مثل شکلات و مگس و نمیدونم اینا استفاده میکنن که اگه شکلات پوشش نداشته باشه چی میشه مگس جمع میشه دورش و این حرفا حال میکنم حالا نمیدونم اینجور شعارهای شکلاتی هم جواب نده کلان کم کم تو مرحله بعد زنا دور از جون دور از جون دور جون مثلا چه میدونم ببخشید خیلی به زباله tash میکنن اگه در کیسر محکم گره نزنین موش و سوسک مگس مثلا جمع میشه کل محلو به گند میکشه به خدا از اینا هیچ بعید نیست چی بگم والا دقی نگرانی از خودت های ادمی که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن کامران ملک موتی. سلام سلام فرزی جان سلام هم بگی بزن بریم ببینیم از فستیوال فیلم فاج چه خبر داریم امروز پنج تا فیلم به عنوان کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین در بخش هنر تجربه اعلام شدن، چهارشنبه ساخته ی سروش محمدزاده، سگ و دیوانه ی عاشق علی محمد قاسمی، ممیرو هادی محقق، نیمروخا زندگی دیررج کریمی و فیلم جنجاله این دوره جشنواره یعنی یک شهروند کاملا معمولی ساخته ی مجید ورزگر. درسته این شهروند کاملا معمولیت واقعا تو جشنواره پراگ هم جایزه گرافیک جایزه فکر بهتری فیلم رو گرفت. جنجالش اصلا سر چی بوده؟ بذار اول بخشی از صدای فیلم رو هم بشنبیم بعد من میگم ماجرا چی بوده بشنویم این دختری تازگی تازگیه نگهبانه میکنن هر روز میاد اینجا باید چون تا خواب خوشگی داریم آقای شما داریم چی کار میکنه میشه یه کاری برام بکنیم آقای صفحه من از شما پول خواستم من ننظرم از بقیه بهتر دیر کردیم مدام در خونه سلام من خونه نیستم. بخش از صدای فیلم یک شهروند کاملا معمولی رو شنیدیم به کارگردانی مجید برزگر من فقط اصلاح بکنم چیزی که گفتم جایزه جشنواره های ایرانی پراگ رو از نگاه مخاطبین این فیلم گرفته بود خب راجع به جنجال فیلم می گفتی کامران جنجال و خبرگزاری فارس رو انداخت و پوستر همون جشنواره پراگ رو در حقیقت چاپ کرد تو این پوستر اسم جعفر پناهیان به عنوان فیلمنامه‌نویس اومده خلاصه دنبال این بود خبرگزاری فارس که بگه پناهی زده انقلابه و تو این فیلم هستش کاری کنه که فیلم از جشنواره حذف بشه از اون طرف ستاد برگزاری هم اطلاعیه داد که تو فرم دریافتی اسمی از پناهی نیست و این اداره رد کرد عجب اگه فیلم برنده بشه فکر کنم باز دوره ماجرا ادامه داشته باشه دیگه دقیقاً همینطوره اینم هم بگم که فردا تو کاخ جشواره A157 ساخته بهروز نورانی پور سگ و دیوانه عاشق علی محمد قاسمی لاک قرمز جمال صد هاشمی خانه ای در خیابان 41 حمیدزاده قربانی و خشم و حیاهو حومن سیدی نمایش داده میشن بسیار خب از موسیقی چه خبر تازه‌ای داریم دار امروز یعنی دو روز مونده به آغاز جشواره بالاخره پوسترش منتشر شد یکی دیگه از گروه هایی که اجراش 100 درصد محرس شده گروه پالت که شنبه آینده 24 م تو برج میلاد کنسستش برگزار میشه ممنونم ازت کامران ملک باد باید خدافزی میکنیم بخشی از یکی از کارهای گروه پالت یعنی اینجا شهر من نیست رو میشنبیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار. سربازی سربازی سربازی سربازی سربازی را کشت گوزفندی سر بازی گرگم به هوا گرگی را خورد دست روی آسفالت خیابان ها جان می بالهایی زیر سایه سرد تفنگی بی جان می مار. در سیرتاق آتش بر سفره زمین در نور و در ظلام ای باب سلام سی دوشنبه شب را ضمن تعجب از هنوز نامشخص بودن وضعیت صلاحیت 56 داوطلب شرکت در انتخابات مجلس با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. درخواست پادشاه عربستان مبنی بر عدم دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی عربستان و نظر کارشناسان که شما خودت وسط و سوریه و عراق داری بندری میزنی باید به دیگران میگی نیان زنگ خونتونو رو بزنن اختلاف نظر جامعتین بر سر بودن یا نبودن هاشمی رفتن جامی در لیست آنها و اختلاف نظر ناظران که این جامعتین دقیقا چی میزنن که هنوز فکر میکنن بودن یا نبودن یه نفر تو لیست اونا برای انتخاب شدن مهمه و نظر وزیر دادگستری نظام در مبارزه با فساد کم آورده است و پاسخ فعالان که حاجی یه سیاه هفت سال دیر متوجه شدی بیزی چهل سال دیگه بگذره آلا بعد صحبت میکنی مهمترین الانوین خبری ساعت گذشته را شامل می اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بلی سلام بنام بگذارید رسیده کشور هند قصد دارد 5 میلیون دلار در صنعت فولاد ایران سرمایه‌گذاری کند بر همین اساس در صورت تحقق این تصمیم صنعت سازی ایران متحول خواهد شد. ببخشید گندله چی دیگه شوفون سالو؟ ای ببین من تعریف کردم گندله یعنی گلوله های تولید شده از سنگ آهن دیگه. بله با تشکر از همکاران به ادامه ی خبر توجه فرمایید پایان من شروع اخبار این که تموم شد آقا این میکروفون تهلا این خبری چه زود تموم شد آره دیگه باقیلش میگه با این سری <تصفح> موسیقی چیه؟ بل بل الان میخوایم به افتخار هندی های که میخوایم تو چشورمون سرمایه گذاری کنن غیر هندی بدیم مافقی؟ بابا، آخه اینجا یه زشته زشت چی بابا؟ اصلا جاش همینجاست بل بل جان. حالا هندی بلدی به رقصی یا نه؟ اه اه بابا من که دوازده مدل رقص و استاد طلا ای اینجا جاش نیم جاشت دیگه من تعیم میکنم دیگه بل, بل دیگه غیر نایه دیگه بلو ببینیم بل بل چه میکنیم بلو باشه دیگه پس مسئولیتش با شما همینه چه میکنه بل بل؟ ایوان <تصفيق> شنواندگان عزیز جای شما خالی اینجا بل الان شده بیجین کم بیجین کمالا <تصفيق> ایوان البته ای اگه بود من به بهتر اسمی گرفتم و... با تو بدون درخت اینجوری هندی میرخسی با درخت چه میکنی بل بل؟ اسواریم ات هم نعی بردم و... نمیخواد با نمیخواد قبولت داری این چیکی دانت منو کشته بل <تصفيق> بله، همکنون تماس تلفنی داریم با کارسناس مشکلگوشایی برنامه برادر مشکل و از بچه ها و یک کف و زورت تا مشکلات ما را گشاوی کنم بله برادر مشکل و ما در خدمت بله، بنده هم سلام عرض ای میگم مشکل جان بس. همونطور که میدونی بعد از اجرای شدن برجام حیات های خارجی رفت بله. آمدشون به داخل کشور زیاد شدی موزه وزارت در اين باره چيه واش؟ بله خب ما در وزارت هم. با فعاليت هاي اين هياتا ها خيلي موافقم و تصفاقن در موقعيت هاي مختلف حتى جلوي وزارت نظري به هياتا تقدیم مي‌كنه و مورد قبول قرار بغيره مي‌گه. شي مي‌گي بله. مشكل نظري چيه؟ بله. ها فکر کنم تو با هيات هاي عزاداري اشتباه گرفتي. بله مي‌گم با گفتيه امام امت این حیعت ها هستم بله. که نظام را زنده داشتن الان چه خارجی باشه چه داخلی بکنم بابا درم در مورد این حیعت های تجاری سیاسی چیز خارجی صحبت بیکنم ازت. همینا که میان با ما توافق نامو و اینا امیزا مشکل کنن بله بله تازه متوجه شدم بله خب دیگه بابا. در وزارت خود بانه چشم بینای نظام خوب. همه این تحرکات را زیر نظر داریم تا اقوی خدای کرده نفوذ صورت ما نه نه ها الان مشکل به من بگو دقیقاً در این مورد نفوذ چه جوری صورت می گیره ببینید ما تکلیف کردیم امه. و مسئول نحیف کردن اردوت کمی بندان خب. بخروجی یک بند رو حتمی تو قراردادشون قرار, قرار بدن ها و چیه اون بند ببینید اون بند شامل برین میشه که حقبال وزاره رو به شورات نقض و پیش پیش پرداخت کنن دیگه طرف اینه امضا کنن حقبال چی چی؟ حقبال وزاره دیگه حقبال وزاره یک مبلد ناچیزیه برای امور خیر مثل اون نظری و این حرفها مشرف مم. میشه توشت وزاره یعنی شما پول میگیری بله بله. این نفوذ بسته میشه؟ بله بله ببینید ما پول پون رو در اختیار برادران گمنام خودمون آه. در وزارت خانه ها و شرکت های اقتصادی قرار میدیم که اینها در اصل کارشان اینه که جلوی نفوض رو بگیرن نگه باشی سلامت باشیم وقید سلامت باشیم بله بل البته ما به این مقدار اکتفا نمی کنیم و راهکارهای دیگه هم برای جلوگیری از نفوذ دشمن در قالب هیات های اقتصادی خارجی داریم مثلا چی مشکل؟ اینقدر سربسته و پر افعام بله. صحبت نکنیم دیگه چنه من ما رو به صورت شفاف بله بله. در جریان فعالیت های خودتون قرار بیداشت بله. البته یک سری مسائل هست که امنیتیه و ما نمیتونیم بگیم این جاولی بگی بله یک از راهای جلوگیری از نفوذ دشمن اینه که بخاطر مم. اشراف اطلاعاتی که ما در مورد های نفوذ داریم های اقتصادی خارجی مستقیما. با خود ما وارده ما بشن نگه مشکل شما یه چیزی میگی مخ آلم میکشه کجا این نوعیاتای اقتصادی میان با نیروهای بله. امنیتی و اطلاعاتی قرار داد می‌بندند ب... مگه میشه اصلا بله, بله خب شرایط نظام مقدس جمهوری اسلامی شرایط خاصی که لازم آه. سربازان گمنام امام همتون چون عرصه هایی سی... هم با میدان بیان و هم اجازه نفوذ رو ندن بگه. مشکل میگم بله. شما سربازان گمنام با اون سربازان کوچک ولایت یا به جایی دیگر بیزی م... نسبتی ندارین ایشون هم ظاهراً می شما احساس تکلیف ترجی بود که در اصل اقتصاد ب... جان لیلر بزنه و صدای شما قطع شده الو آره الو الو الو الو صدای شما رو بنده ندارم درود بر خامنه ای درود بر بله بله. شما با امر شریف و شعور مشغول ما دیگه قطع شدیم بنده ملحق میشم به شما درود بر درود بر درود دیگه حالا خیلی درود ببین بله بله حالا همین جوری که داری شوهر میدی سوال منم گوش کن مشکل میگم این بابک زنجانی هم از خودتون برخامنه. بود دیگه اینم هم... مشکل بسته دیگه شوهر نه سوال ج... جواب بله بابا این کر بود به هم آراستش بلی بابا نقصیم ازم بلی بله با پوزش از اختلال مغزی پیش در کارشناس برنامه تا و شبیه دیگه خدا نگهدار مشکل ای وا یکی اینو مرخوز. از بغل بکشه بابا اه درد هر میشد بهتر بودا درد دیگه درد به من دهنت خوش بد میدم مشکلی بس درد آقا نمیخوام آقا ای چی میگه این چی میگی درد شعار دادن همیشه هم حکومتی و برای مسئله حزبی و سیاسی و نمیدونم حرفا نیست. یکی از جاهایی که شعار دادن خیلی مرسومه داخل ورزشگاه و استادیوم است و واقعاً شاید تنها جایی که شعار دادن بتونه تاثیر عملی داشته باشه همینجور جاها باشه. شعارهای استادیومی کلا به چند بخش تقسیم میشن. یه سری شعارها حمایتی و تشویق کننده است خیلی هم خوبه. این شعارهای تشویقی گاهی مثلا در حد دود دود دود دود فلان تیم مثلا یا شیر شیر گفتن موقع معرفی بازیکن ها از بلندگوی استادیومه یعنی مثلا چه میدونم بازیکنان تیم رادیو پسورداد شامل شماره یک فرشید منافی شیده شایه دا جلال سایدی شایه سه شراگی بزن شایه چار سامی شیره. و حالا بقیه دیگه همجی تک بتا یعنی باید کتاقر برنامه شیره بگیم دیگه همینجوری ملت و تشمیلت تج... هم تشویق میکنن و این یک مدلشه من خیلی متشکرم و تشویق کنندگان عزیز در آن سوی استودیو در اتاق فرمان بعد گاهی این شعارهای تشویقی میره توی مسیر لقب دادن به بازیکن‌ها و با اینا یعنی مثلا لقبی که میشه عقاب آسیاییه که میشه جادوگره یک دیگه میشه پاتلایی مثل سامی ما که بغبوز پاتلایی بود بعد بعدنم سلطان ژنرال تلایی خلاصه به هر کسی یه لقبی میدن البته گاهی باعث ایجاد اعتماد به نفس اه... کاذب و میشه دیگه بعضی وقت‌ها شعارهای تشویقی اینجوریه که برای تیم خودشون شعر و سرود و شعار رو اینا می‌سازن توی استادیوم می‌خونن خب اینم خوبه ولی وای به وقتی که ملت خلاقیت خودشونو به جای ساختن شعارهای تشویقی صرف ساختن شعارهای تخریبی کنن که دیگه اون وقت هیچ خط قرمزی وجود نداره دیگه تماشگرها یا بهتر بگم تماشگر نماها موقع شعار دادن به اصلاح چششونو میبندن دهن و وا میکنن و با کل خاندان طرف میکشن وسط خدا, خدا نزیب نکنه خب چرا آخه ما که عمرن از این کارا نمیکنیم نه شما هم که نمیکنید. ولی اونا اونها که میکنن نکنند،, نکنند نکنند نکنند سه تا نکنند چون ما اونها گفتم کن... من نمیدم چرا بعد اینجوری کنین که اینجوری بشه آخه دلتون میاد دل حاجی مائیلی رو اینجوری میشکنین تو میاد و بچو مادر و خواهر داور چه گناهی کرده زن و بچو مادر اونم بالواست باید بهمون همون فر بخوره یه چی یه دونه تو بره اون تو یه دونه بره تو دوباره فردا علام میکنم بابا به قرآن فوتبال نمیخوام به دین نمیخوام اروای که مادرم نمیخوام به جوله نفاه نمیخوام آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن و واقعا این فوتبال؟ خب فری برزه غریب بریم روی موضوع برنامه و شعارهای فرهنگی ورزشی سلام رستی سلام سلام به همه گی فرهنگی که فرشی چرز کنم تو ورزشگاه هموندو که اشاره کردی انواع و اقسام شعارها رو داریم اول اجازه بده واسه نمونه شعارهای تحصیل گذاره من مصبت رو که میتونه روح بازی رو به بالای هزارم برسونه دو تا شعار مختلف بود البته درسته؟ درسته آره قسمت اولش مربوط ورزشهای فوتبال بود قسمت آخرش هم تو سالن واریبال بود که تماشقای یک دو سه میگفتن اما بریم برو شعارهای توهینامویست که اونم چند بخشه کمزه رو خیلی زهداد این سه دارم بهش <تصفيق> بله، ب... ب... چی میگفتن فریدورس؟ بی شرم، شرافت مثل این که میگفتن آره، آره. بله. اینو کمزرش بود. آره، واقعاً شنیدن بعضی از شعرا، این شعرا، هرچی تو ورشگاهامون مو به تن آدم سیخ می‌کنه که باید حتما گوش بچه‌ها رو بگیریم که اومدن بازی تیم محبوبشون رو ببینن. بله، همینطوره. خب دیگه چه خبر؟ خبر دیگه هم داری برمون؟ دیگه فقط تو بیشتر شعرا مینا باید بگم که تی... م... چیه محرومیت کمیته انزباطی رو به خورده تیما بازیاشون بدون تماشاگر انجام میشه مدیران که قربونشون بعد رفت هیچ برخورد سفت و سختی با لیدرها ندارن و مهم‌ترین مشورام اونیه که دیروز شاره کردم، نیفسشون رو خارج واسه دوره, دوره ببینن، اینا برای شعار. لیدرا گفتیا میرن شعار. البته بعضیا میگن شاید اگه اینجور شعارا رو از ورزش ایران حذف کنن، شور حالش اصلا از بین بره. حالا نمیدونم چه جوریه. ورزش ورزشو به این چیز چیزا به شعار میدونن. ممنونم از زاد فریدبرز غریب. بعد خداحافظی می‌کنیم تا فردا. تا فردا خدا نگهدار. امشب هم تموم شده احمد شاملو گفته افسوس آفتاب مفهوم بیدریق ادالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه آنان را این گونه دل فریفته بودند ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند شبتون خوش تسلیم باد و رفتن ناموس باکن آواز دست جمعی و شاد کلان به خون نشد درختان تبر شدند و با میبرد کمماکان بلاققا لعنت به سااد آن آندل خرد افتت زد شکسته در این شهر باورد به دست دوست یا که به یا